جانبی وندوز. ما خوشید، بد کلیاتش رو یه توضیح میدید؟ واسه درستش کنی؟ درستش میشه با چی درست کنم؟ باشه، این چه علامت منفی و مثبت است؟ یعنی نوره دیدم. دیدم. خب، هستم. هستم. استازو چجوجو کنم؟ درستوبر نمی‌چوجو کنم. خب توی صدقه گفتن این نمودار کلی که توی اسلاید اول گفتین، یکی از دانشجوی ما کل ربعش فهم حدیث رو، یعنی کل کتاب رو تقریبا به صورت این نمودار دراورده بعدا فایلش رو در اختیارتون میگذاریم شما اون دس راستشو فقط بده دانشجو تو مرحله اول بگید تعریف ضرورت. بله ببینید تعریف جایگاه ضرورت کاربرد ه رو وارد ریزش نشید همجور تا آخر پیشینه سیر اجمالی سیر اجمالی اگه یادتون باشه گفتیم فهم بعد فهم مقصود ببینید مرحله اول پیش نیازها فهم متن حدیث فهم مفردات نیازمند علم صرف لغت شناسی دیگه اون چیزای ریزشو لازم نیست اول بگید فهم متن فهم مفردات هست فهم ترکیبات درست خب الان فهم متن با فهم مقصود قسیم همن فهم متن با فهم مقصود خانه هست داره. خب حالا فهم متن خودش فهم مفردات داشت و فهم ترکیبات حالا فهم مقصود خودش گردآوری ها داشت که به شکل تفصیلیش میشه اسباب ورود حدیث، تشکیل خانواده حدیث، به احادیس معارض، بهره گیری از دستاوردها خب اینجا یک اشکال کوچولو داره یک اشکال کوچولو داره اشکال اینه که قرائن داخلی رو اینجا نشمرده ما قرائن داخلی رو جزء سیاق مطرح کردیم در کتاب روش و معدیس مثل چی بود؟ ویل لمن غلبت هو اشراته که گفتیم تضمین کرده آیه 160 سوره انامرو من جا به الحسنت فلا و عشق همساله ها و من جا به سیعت فلا یوزایلا مثلا و هملا یوزدما اگر من بودم خودم تهیه کننده این در زیل فهم مقصود اصلی حدیث می نوشتم گردابری قرینه ها یعنی فهم مقصود اصلی حدیث با گردآوری قرینه ها حاصل میشه به جای گردابری قرینه ها زیر مجموعه می چی؟ قرینه های داخلی درست شد؟ ها. این چون پی دی به من داده بود نه ولی تو میشه بعدا خودمون درستش بکنی مشکل نداره درست بشه این مقداری یک کم دیگه دوباره اسکرول کنید بله بله فایلش هم بعدا میگذاریم در اختیار همه دوستان قرار میگیره فهم مقصود اصلی حدیث که یکی از مهمترین قرینه ها همین قرینه های متصل منفصل فصل لفظی بود که میشه خانواده حدیث توجه به حیث معارض و بهرهگیری از دست آورد. اون قسمت موانع فهم حدیث که هنوزم که هنوز تو کتاب روش فهم حدیث دیگه در مرحله فقل حدیث یک تا چهار آموخته نمیشه. اونا رو منتقل کردیم به آسیب شناسی حدیث توی مقطع آرشناسی ارشد دیگه موانع شاید گوشه ای بشه, بشه ولی به صورت کلی دیگه نمیاد. اینجا این رو قسمت رو دیگه لازم نیست. خب پس من یه بار دیگه این رو ریز میکنم کلش رو ببینید. فقط سمت راست ها رو سیر اجمالی رو می آموزیم پیش نیاز ها من می خونم که کسانی که نمی تونن بخونن با اون خوندن من تطبیق بدن پیش نیاز ها فهم متن حدیث فهم مقصود حدیث این دو قسمت سه قسمت اصلی برای این کار هست خب بریم سراغ بحث اخسرن دوستان جواب دادن آقای عسانزاده. دیگه بیش از سه دقیقه هم شد. بعد. خب برگردیم به اون. این پایین برگردیم بال. خب بعد از فهم مفردات فهم ترکیبات رو داریم. در فهم ترکیبات ما باید حتما حتما از شروع استفاده کنیم یه نکته ای من اینجا ارز بکنم ما در گذاری اون چیزی که از دانشجو و طلبه باید بخوایم اینه که بتواند درست ترجمه بکند. یعنی فائل رو فائل بداند مفعول رو ففعول بشناسد تمیز رو تمیز معنا کند و از این قبیل بیش از این نیازی نیست اینکه بدانیم اینجا به شکل عطف بیان است یا بدل بدل اشتمال است یا جز از کل است یا بدل کل از کل است اینا نیازی نیست البته کسی که کار ادبی میکنه اینها نیازه ولی ما در سطح فهم حدیث به همین مقدار نیاز داریم به فهم زرب موسا ایسا موسا است نه عیسی نگه که پس اینکه هر دوشون اعرابشون تقدیریه بدون جایگاه کلمه فائل مقدم مثلا بر فلان یا مثلا فرض بکنید اگر یه متن نحجل بلاغه دادن مثل این متنی که الان میرسیم یه دو تا اسلاید بعد که جزء به جاهای مشکل ساختار نحویه نه جور بلقه همه جاش مشکل واجعی داره ولی مشکل نحوی خیلی جاها نیست این جزء به جاهایی که مشکل نحوی هم داره عین الذين اون عین باید باشه یک کمی اگر عینل لذین ظمون ان هم الراسخون راس العلم فل كذبا وبغيا و بقیان علینا ان رفعن الله خب ان رفعن الله وم خوب این ان رفعنا، فائل فعل تمیز مفعول چیه کجا ان کسانی که ادعا کردند که اونا راسخه در علم نه ما از روی دروغ و از روی زیاده خواهی بقی یعنی ظلم و زیاده خواهی خب ان الله چی شد ما در این حد لازمه که بدانیم این چیست و این چه نقشی در جمله داره و ارتباطش چیه اما اینکه که دقیقا بدونیم از نظر نحوی چی بهش میگن اینقدر نیاز نداریم ما باید این معنا را اینجوری در بیاریم ببینید اگه دانشجوی شما فراگیرو را اینجوری این در آورد کجا هست کسانی که اونا خیال میکنن راسخه در علم نما؟ اینم از روی کذب و از روی بغی چرا حالا بده به ما ظلم میکنن از روی حسادتی که ان رفعن الله و وزعهون هم. همین معنا چرا معنا هیچ لازم نیست بگیم این رفعنا مفعول مطلق مفعول الله مفعول لجله هست تمیزه حاله اینا رو نیاز نیست در این حد اگه رسیدید کافیه در دانشجو کافیه میگیم نیاز نیست دیگه رو بحثش نریم من میدونم اگه تو بحثش بریم سه تا نظر اینجا میدن <تصفيق> خب حالا اگر یک کسی پیله کرد که چی هست ما کتابایی داریم اینا رو انجام دادن در همین ایران راجب نهج البلاغه هست شروح ادبی ما هم انجام دادن مثلا شرح ملا صالح این نکات رو میپردازه شرح ابن این لکات رو میپردازه حتی گاهی اوقات علام مجلسی تو بهار و تو مرات اینا رو تذکر میدن یه دفعه خیلی حالا حتما گفتید که باید بدونم چه مثال دیگه رو هم من دیگه نمیزم بلندتر مثلا به خودش ولی خودتونم باید بدونید که بیاره سوالی هست خیلی. خب من توی اون دوره های اول بین ساختار بلاغی و مجازی فرق نمیذاشتم ساختار نحوی رو بیان میکردیم بعد مجازها رو جداگانه مطرح میکردیم بعد در تدریس دیدم که این دوتا رو از هم جدا بکنید برای فراگیر راحت تره. اول جملات و احادیث بیارید که هیچ بیان استعاری تشبیهی نمادین و سمبولیک نیست ساده هست ولی ترکیب نهویش سخته مثل همین الان کذبن همون کذبنه بقیان بقیانه رفعن الله هیچ منای مجازی و استعاری تو اینا نیست اما ترکیبش چیه؟ سخت خب اما توی ساختار مجازی و ساختار بلاغی ما باید یه مقداری زوغ فراگیر رو تقویت کنیم. من توی کلاسه دکتری نهتر بلاغم همین تر شعرهای سهراب سپهری رو میخونم. شعرهای حتی اخوان سالس رو براشون میخونیم. که اون ذوق ایجاد بشه. چون یه جاهایی ائمه علیه السلام بسیار بیانشون تمثیلی، زیبا، مجازی الان شاید بتونم بگم ده ها صدها ها نمیتونم بگم چون ناییدم ولی شاید باشه ده ها مقاله راجع به شکل ادبی نهجل بلاغه است الان بید تو انترنت بزنید استعاره در نهجل بلاغه تمثیل در نهج بلاغه تصویرگری در نهجل بلاغه تشبیح در نهج بلاغه نماد در نهج بلاغه هر کدوم از اینا ده ها مقاله داره ولی شما باید در یه سطح ساده‌ای، تو این قسمت زوق طرف باید تحریک بشه اگه زوق برانگیخته بشه فهم حاصل میشه ببینید اون ذوقه اگر همراهی نکنه شما کلمات رو ترجمه می‌کنید ولی در واقع ترجمه‌ای به طرف منتقل نشوده خب ببینید میگه <تصفيق> الهم رائد الموت شما باید یه شعری پیدا کنید توش پیک مرگ به کار رفته باشه پیک چه به مرگ ده پیک نامه میاره اون زبان استاریو که فهمیدید اینجا هم میگید میگه تب فرستاده پیشا پیش مرگه لذا مادرها از تب و هاشون زیاد میترسن البته تب ها از این مادرها خیلی حساسن همچین یه ذره به دوبه پیشونیش داخل باشه میگه بچم تب داره حتی سی و درجه من خودم تا چه درجهم رفتم خب چیزی نمیشه خیلی ولی این بیان مجازیه باید به همراه زوغ توی ذهن بنشینه در تعلیم این قسمت شما زیاد میتونید جاذبه ایجاد بکنید شعر ایران قنی از این نظر حتی اشعاری که ترجمه همین احادیث و آیات هستن ما به صورت چی؟ مجازی و به صورت خیلی خوشجازبه پرجاذبه داریم اینا رو میتونید یک کلاس نصف یک کلاس رو مختص به همین ها بکنید عرض کنده من الان دارم فقال عدیثه. دارم زبان نحجر بلاغه تو دکتری درس میدم برخی جلساتمون نصفش ادبیات فارسیه برخی دو تا جلسش دو قسمت از یه جلسه بعد ولی وقتی اون دیگه نحجر بلاغه اون قسمت رو میگی اون زوغه ایجاد شده و اون بیانه فهمیده میشه. نه هم شعر کهنمون هست هم شعر نومون ما در غزلیات حتی مولوی چه برسه به خود مسنویش حافظ که خیلی داره حافظ ساکنان حرم سطر و عفاف ملکوت با من خاک نشین یا راه نشین باده با مستانه زدن شش تا چیز تو این باید تخیل کنی خب حرم یعنی چی؟ ستر و افاف ملکوت کجاست؟ این ساکنا کیان من چرا راه راهنشین راه نشین اینجا کنایه هست چیه؟ باده مستانه مگه همه باده ها مست نمی این چه چیزی؟ اینا همه رو بایده هفش داره باید توی دفعه مثلا مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو از دنیا مزرعت الاخره خیلی از این اشهار رشید و دین که من یه شعر مال قیمت رو کلم رو ما یه خوندم همه یه ست تا کلمه یا همون جاهز رو ایشون شعر کرد بله و ما خدا رحمتشون کنه بعدی و زمان فروزانفر احادیث مصنوی کتاب نوشتیگه یعنی احادیثی که پس زمینه موله بودن در سرودن این شعر ما شعرهای مذهبی هم زیاد داریم خیلی هم تخیلی خیلی به کجا چونین شتابان گون از نسیم پرسید تا آخر هم شعر نو داریم هم شعر کهنه زیاد داریم معنا هست اصلا شعر کلا تخیل توش نباشه شعر نیست اون تخیله رو ما تو شعر فارسی میفهمیم اون ذوقه که درآمد حالا باید اون عربیه رو بید. اون حدیثه رو، اون آیه رو بیریم به اون وصل می‌کنه تو اون زمینه باید متناسب با اون شعری بیابیم یه مقدار وقت گذاشتن میخواد اگر نه بری تو اینترنت ظرف نیم ساعت یه ساعت پیدا کن میگه من بلغ سمانین فها و اسیر الارض اسیر زمین این چقدر قشنگه من خزر له في شیء لزمه خزره یعنی سبز بشه یعنی چه معنی داره این معناش اینه اگه کسی یه درآمدی از یه رای پیدا کرد ولش نکنه همین مشکلی که ما خیلی جوانا داریم میگه گفتن اون کاره بهتره میره اونو ضرر میکنه شما اگه یه راه مثلا به من پیشنهاد میکنن برنامه‌ریزی بیا دفاع کن نگم که این که 300 تومن بیشتر با آدم نمیدن ببین نه اینم یه راه درآمدی به شما میگن دو واحد بیا فلان جا تدریس کن او این همه راه برم بالا بالاخره میصر 50 تومن میدی تاکسی 100 من بد میدن بعدم یه کار فایده ای داره من خزر له فی شی ان لازمه اگه یه کسی این سبزه در اومد براش سرزد جوونه زد ولش نکنه. این کم کم یه درخت تناوری میشه. این چقدر زیبا. خالا به گردید پیدا کنید مثلا معادله این چی هست. یه مثلا ببینید ان الله صبحانهو چقدر این قشنگی. من برخی کلمات حضرت امیر رو میخونم ده بارم میخونم تعجب میکنم. حالا اون ابن اول هدید که میگه یه چیزی رو چی هزار بار یا صد بار یه خطبه هست مال مرگ میه خب ان الله سبحانه و تعالی از ثواب اطاعته و العقاب الا معسیته زیادتا نگید اشتباه تایپ شده ها زیادتا با زال اینجا هست لعباد ان نعمته وحیا شتا لهم الی جنته این یک تمثیل کامل است تا این تمثیل تو ذهنتون جا نیفته و تو ذهن فراگیر جان اندازید اصلا این فقه حدیث اینجا فهم حدیث اتفاق نمیفته من ترجمه میکنم ببینید اصلا اتفاق میکنده بعد تمثیل رو میگم خداوند صبحان پاداش را بر اطاعتش قرار داد و کیفر را بر نافرمانیش برای دور کردن بندگانش از انتقامش و راندن آنها به سوی بهشتش. خب، یه چیزی ساده نشون میده. حالا ببینید شما یه چوپانی فرض کنید، یه گله گوسفندو داره از کنار یه پردگاه عبور میده این مرتب چوبشو باید بچرخونه هی هی هی بکنه گوسفندها هم حواسشون به طرف پردگاه نره به این بالایی که چوب نخورن هم اینکه تند برن از اینجا این چوپونه گوسفنداشو دوست نداره واقعا میخواد بزنتشون خدا میخواد واقعا ما رو بزنه آفریده که تازیانه بزنه از صدای ناله ما خوشش بیاد پس چرا میگه میرید جهنم میرید جهنم میرید جهنم این اون چوب تکون دادن است زیاده اتفاقا تو همونجا استفاده میشه اینکه لغت هم برید دومان. یکی از اسم موارد کاربردش همین مال خدا هی کیفر ما رو داد میزنه که اتفاقا تو پردگاه نیفتیم واجه یه که اتفاقا برای افتادن ما به کار میره تو قرآن چیه؟ کی میدونه؟ هوا همین هوا و هواست که میگید هوا یعنی به سر در افتادن منزله و هوا کسی گمراه میشه؟ فقط هوا کسی که گمراه میشه به سر در میفته نه اینکه یواش یواش به رپایین به پردگاه میفته امام علی از لغت اقتحام استفاده میکنه اقتحامم یعنی همین سر در اومدن توی پردگاه وقتی اون تمثیر رو براشون گفتید مجازی بودن بیان مشخص میشه شیرینیش هم احساس میشه پس خدا برای دور کردن ماهی صدا میزنه جهنم جهنم جهنم برای تهدید کردن یه دیگه هم تهدید میکنه ولی بیشتر عمومی این خب یه فایلایی هم هست اینجا به صورت صوتی صوتیشو الان داریم یا نوشتاریشو نوشتاری صوتیش نوشتاری. نوشتاری. هم هست حالا در یه جلسه دیگه انشالله شاید بگذاریم یه دوره من فقال حدیث یک رو گفتم این تا جلسه چندش هست شاید فقط جلسه اول دومش باشه من اون فایلی رو که گذاشته بودم با این فایل فرق نداره یک جلسه پس احتمالاً باشه بلی. این تو پاورپوینت به این شکل نشون داده نمیشه ها این تو پاورپوینت مرحله مرحله میاد یعنی ما حدیث رو میگیم متن است و سند بعد متن میشه فقه الحدیث سند میشه رجال یعنی استفاده از زیبایی تصویری قدرت پاورپوینت تو تدریس خیلی مهم هست این میگم چون پاورپوینت شده این دیگه حرکتش افتاده من فایل این رو هم در اختیار میگذارم انشالله دوستان بدین ما این جلسه این جلسه اول فقه حدیث یک هست به صورت پاورپوینت این رو هم میگذاریم دو تمرین هم دادیم و انجام میدید این خب ما گفتیم آخر جلسه چند دقیقی میذاریم پنگ دقیقه بیشتر وقت داریم ولی من وای میسم تا پنج مشکلی نداره. اگر سوالی تو اونجا نیست از همین هزار سوال رو شروع بکنیم اینجا دوستان مطرح بکنن ببینید سوالها رو بیشتر تجربیات تلخی که تو کلاس داشتید نافهمی هایی که تو بخشی از کتاب هست چکار بکنیم یا اگه اینجا یه چیزی انتظار داشتید که بنده بگم و نگفتم اینها رو مطرح بکنید اینا رو من باب توصیه میگم حالا سوال یکی هم خواستید به سوال ایشون مشکلی نداره هیچ عبای نیست این میواهرم بخورید مشکل نداره. سیب می میدیم بخورید شد. نه ولی وقتم تهم شده خب اگر سوالی هست دوربین رو میتونید ببرید رو کسی که سوال میکنه یه شگرد واسه نارنگی خوردن و میوه خوردنه که آقای حسن زده الان جواب سوالا رو بدیم یا بعدا؟ هنو... همه فرستادن. همه فرستادن؟ بله، جواب چهارم درسته و خوندن منم تقریبا همون چهارومون. همه چهارم گفتن. چون تو و لدیسم چیز کردیم. این در زبان شناسی جدید الان بین معنای کاربردی و معنای اصلی فرق گذاشتن. ولی قریب نگاران ما چه در حوزه قرآنی که حدود 78 تا قریب القرآن داریم و چه در حوزه قریب نگاران حدیثی که حدود 70 قریب الحدیث داریم من تو مجله شماره 13 علوم حدیث اینا رو نام بردم حدود 70 تا قریب الحدیث داریم اون موقع متوجه شده بودند که یک واجه ممکنه وقتی در یه حوزه یا یه خورد فرهنگ میاد قرار میگیره معناش ممکنه فرق بکنه الان شما طلاب از شهریه چی میفهمین با اینکه شهری یعنی منصوب به شهر یعنی ماهانه ولی کن مثلا شما آقا که میگید یعنی حضرت مقام معظم رهبری ولایتیای تند قبل از انقلاب آقا میگفتن امام زمانند تو خونه وقتی میگید آقا یعنی خب همسرتو. نه همه تو خورده فرهنگ وقتی میاد فرق میکنه من. یا مثلا فرض بکنید در مورد همین واجه های خیلی روزمره ما الان ما تو کلاس میگیم این خانم همه محترم و چادریان چادر رو میفهمیم ولی میگیم اشایر ما بیشتر چادر نشینن. اونجا چادر تو اونجا یه معنی دیگه میده اینا واژه تو خورده فرهنگ ها تو استعمالات قریب الحدیث ها این را متوجه شده بودن و همه جوابشون درسته الحمدلالله خب گذشته چه خب کاربرد غریب الحدیث که از این بحثی که الان کردیم مشخص شد یه معنای واژه ممکنه در لغت معنایی داشته باشه وقتی میاد توسط امام صادق علیه السلام یا حضرت رسول اکرم مورد استفاده قرار میکنه ممکنه یه معنای ای داشته باشه خب غریب الحدیث ها ببیجه نهایی به بی ابن اسیر و از اون بعد وقتی که واژه قریبال الحدیث رو معنا میکنن اون یه تیکه از هدیث رو که این واژه در اون به این معنا به کار رفته میگن. مال همین گاهی اوقات میگن این واژه سه معنا داره سه تا هدث هم براش میگن. و نهایی نصیر که کرده فقط همون تیکه هدیث رو میگه. مثلا میخواد واژه خنعه رو بگه به چه معناس خنعه یه معناش بده یه معناش خوبه میخواد بگه این خنعه اینجا به معنای خوب کار رفته میگه جابر از پیامبر مثلا این حدیث رو نقل کرد فخنعه ای فلان پس فایده اصلی قریبه اینه دوم ما قریبه الحدیث نو داریم ولی قوی نیست خود دارالحدیث چاپ کرده من خود من متزدیه چاپ بودم ولی قوی نیست قریب الحدیثیه از تو دل بهار در رو برده. نکاتی که علای مجلسی راجع به واجه ها گفته ولی خب علای مجلسی 20 تا کتاب لغت حد استفاده می کرده. من یه جا اینا رو شمردم یه یادنامهی برای علای مجلسی سال 79 منتشر شد منابع بخشی از منابع بهار بیش از 20 کتاب لغت قریب الحدیث رو می دیده ایشون خیلی کار عجیبیه اما اینکه امروز هم قریب الحدیث میخواییم بله همین امروز هم حتی قریب الحدیث نیاز داریم ببیجه به زبان فارسی و مهمتر و مهمتر و مهمتر اینو دقت بکنید در احادیث شیعی دوستان مجمع البحرین قریب الحدیث شیعی هست ولی خیلی قوی نیست متاسفانه خیلی قوی نیست بلتش اینه اون معنای حق، اون واجر خوب ارائه نمیده. یه جاهایی هم تقلیدیه. یه جاهایی هم زیادتر از لغت رفته. نزدیکی به دائرتال معارف شده. ما یک غریب الحدیث در سطح نهایی میخوایم منتها تو احادیث شیعی. و مهمتر از اون تو اصطلاحات مثل معان اخبار شیخ صدوق این نیاز هنوز هست، دانشگاه دانشگاه‌ها یا مؤسساتی پیشقدم بشن یه کار گروهی انجام بدن این کار خیلی مورد نیازه سوال سؤال دیگه بلندتر میرسه میرسه مفهوم نیست درستان قرآن <متشق> با مخابرش <متشق> آیا ما که احوالیس هست یه درستان قرآن زمان احوالیس و در یا قلیده فهم درایات بیان که آیا نیازی هست که ما بیایید برد این زمان احوالیس رو برسید به صورت محور برسید سراجه قرآن هست قرآن چه حدیث همیش مزید نیمه هست بله همینطوره ما در حدیثم به این نیاز داریم ولی ما در مورد زبانشناسی بحثی بکنیم ببینید متاسفانه علم در ایران در این صده یا و اخیر به شکل ترجمهی جلو میره و این صحیح نیست به چه شکل مثلا چند تا فیلسوف تو چند تا زبانشناس مثلا فرانسوی، آلمانی، انگلیسی مثلا یه مطلبی رو میگن مثلا لیکاف میاد یه چیزی رو میگه مثلا توی هرمونوتیک مثلا وینکتان میاد یه چیزی رو میگه یا مثلا گادامر یه مطلبی رو می یه کسی که اونجاها درس خونده تو اون مکتب کار کرده و بالیده میاد اینا رو ترجمه میکنه، درس میده شاگردای این می پراکنن این رو بعد کم کم ما هم استفاده میکنیم در صورتی که ما نیازمند پایچینی بومی خودمون هستیم نمیگم استفاده نکنیم ولی استفادهمون به شکل گرتبرداری نباشه دو دقیقا اینو برداریم بذاریم اینجا بعد بگیم مثالاش اینه ما زبان حدیث رو در اصول همون داشتیم ما در اصول فقه یه مبحث مبسوطی داریم به نام بحث زواهر قبل از بحث حجیت بحث زواهر داریم خیلی بحث دلالت هست، بحث ظهور هست، بحث سراحت هست اونا خیلی کمک میکنه اونا اولاس بخونیم تا بحث زبانشناسی جدید ولی زبانشناسی جدید هم کمک میکنه حالا تو زبانشناسی هم ببینید برخی ترجمه ای یعنی این همون بحث رو اینجا منتقل کردن اینجا باید با احتیاط صورت بگیره با احتیاط و خیلی دقت زیاد ولی یه عده هستن همین هم نقد میکنن مثلا یه نمونهشو بگم ببینید اینا میگن که ما در بحث استعاره مفهومی در واقع یک شعه یه مفهوم مجرد رو میاریم نزدیکش میکنه به یه مفهوم فیزیکی یه مفهوم مادی آیا این تو همه چیزا امکان پذیره ما اصلا روایاتی داریم شما اگه خدا رو تصور کردید او میشه مخلوق خود نهجالبلاغه هست میگه التوهید ان لا تتوهمه و الادلو لا تتهمه دوم آیا ما تنها راه فهم فرشته دوزخ بهشت فهم تخیلیه فهم فیزیکیه فهم استعاریه اینا رو باید مام... ولی استفاده از زبان جدید، استفاده از نکته‌های شناسی جدید من خودمم استفاده کردم مثلا یه کتاب دیگه من دارم روش فهم قرآن تو اونجا از مفهوم قانونی که مفهوم بسیار مؤثری تو فهم زبان استفاده کردم ولی تا کنون ما با مشکلی روبرو نبودیم در فهم قرآن و فهم حدیث که منحصرن از طریق زبانشناسی حل بشه کمک کننده هستند. ولی اینکه منحصر به اونا بشه اینطور نیست ما خود بحثای فقه الحدیث فقه القرآن خودمون و بحثای فقه اللغه و بحثای اصول فقه خودمون مقدمن بر اونا اینا رو باید بخونیم حتی ببینید اونها هم یه سریشون از عبدالغاهر جرجانی ما مثلا استفاده کردن ولی خب استفاده شون پیش رفته نفی نباید بکنیم اما همیشه نقد باید بکنیم عاشق از کلمات در یافت که یافت میشه پروا <تصفيق> بله این مشکلی وجود داره خوشبختانه تو زبان فارسی این مشکل چندان جدی محسوب نمیشه ما به بچه بگیم عقلت کجاست بهتر میفهمه تا بگیم خردت کجاست نه مثلا بگیم که سلام محبت داشته باش بهتره، بهتر میفهمه تا بگیم مهر ببرز تو زبان فارسی اینا رو ما ولی اگر پیدا نشه ما باید از ترکیبات استفاده بکنیم راهی به این نیست اگر در ترکیبات هم دوباره ترکیب کوتاهتری بود مثلا ببینید شه... آقای شهیدی در طرق شکیرن و هدرت صقبا تو نهج بلاغه از این زربول استفاده کرده قوره نشده مویز گشتی همه اون معنا رو میرسونه با اینکه کلماتون کلمات نیست پس اگه کلمه نزدیک باشه مثل تقوا پروا بهتره اگر نبود ترکیب تو ترکیبم اگر ما یه ترکیب جا افتاده مجازی مسل ضر مسئلی رو داریم اینا مقدمه تا سربس شده دیگه مثلا یه جواهر رو وب یه خیلی وسند و بعد این دیگه این علمم خیلی کاربودی مثلا صرف و نحو توی حوزه استعمال نمیشه یه من خودم توی حالا دکتری که اومدم بعد خدمت شما خودم هم خودمون همین درس داشتیم اونجا دیدیم چقدر از اون مطالب بلاغی که بود و مسائل بلاغی که توی همون علم بلاغت حالا چه جواهر و بلاغه و جای دیگه استفاده می‌شد ما ها اینها رو متاسفانه چون به علت فراموشی توی نهجور بلاغه با چالش باش به روح بودیم این حالا نمیدونم شاید مثلا توی دانشگاه هم فکر میکنم خیلی حالا به به این داده نمیشه بحثای بلاغی توی رشته های ما بله ببینید ما در فقه الحدیث یک و دو فقط باید همین نیازشو برای فراگیرنده نشون بدیم یعنی بگیم این حدیث با این که همه واژه‌هاشو می‌دونیم، میدونیم ترکیب نحویشم هم میدونیم اما باز برای ما مفهوم نمیشه از طریق تمثیل تشبیه. من مثال زیاد, زیاد زدم تو کلاسا الالم و قاعد و, العمل و سائق و, نفس و حرون شیش تا کلمه هست همش هم مبتدر خبر خیلی ساده است علم قائد است عمل سائق است نفس حرون است میگیم چه لوقتیش سخته میگن حرون میگیم خب حرون یعنی سرکش. بازم حل میشه. خیلی هم ترکیبش ساده است ولی از طریق تمثیل اینو باید بگیم ما فرض کن یه چارپایی چموشی میکنه سرکشی میکنه زورش هم زیاده مثل قاطر شما از جلو بکشی افسار پاره میکنه از عقب حل بدی خودت خسته میشی را نمیره میگه چه کار بکن یکی از جلو بکشی یکی از عقب نفس آدمی به این زوریه زور زیاد و سرکشیه علم باید از جلو بکشه عملم از پشت هلش بده علم تنها موفق نمیشه آدم عمل تنها موفق نمیشه اون تمثیله میاد اینو در این حد باد وقت در سطوح بالاتر باید یه باصخانی صورت بگیره چاره ای نیست غرب و من میگم بره ولیس قرب قبره حقم تا آخر ولیس تو متول داره افرن و عنی که انضم تکاتکون تا اینا رو تو متول بخونیم ولی معانی اصلی اونا رو باید مثلا ببینید آقای همایی جلال الدین همایی یک کتاب داره صناعات ادبی ما اون موقع که عربی میخوندیم این رو هم میخوندیم اون رو برای طلبه و دانشجو باید بیاری ش... ما فارسیم معادل فارسیش هم استاد مشکل ما اینه به <تصفح> وقتا ما چون ادبیات فارسی هم خوب نخوندیم به صورت تخصصی تو اینجا مقصد تو نهجه دلاغه گیر میکنی بله یعنی خمایی همچین دلوقت دلوقت کاری دلوقت کرده. کرده این همون صناعات ادبی مثلا فرزن صنعت عکس صنعت مثلا سج اینا رو مثال فارسی برای شورده هم شیرینه هم ف... فهمش آسانه ها ما بگیم اشرف و سادات سادات و اشراف. صنعت عکس نمیفهمه ولی خب تو فارسی صنعت عکس کلی زیاد داریم خیلی زیاد داریم یعنی تو اشعار شعرها صنعت عکس زیاد به کار رفتیم خب فارسی شو بخونیم این درست بله آن آه. ببینید ما در باره قرآن خیلی قدیما آیات داشتیم از ما در بزرگاتون بپرسید قرآنهی میارن آخرش یعنی مثلا میفهمید واجه ی ویزا تو قرآن اومده نمیدونه کجاست فجر توی قرآن هست نمیدونه کجاست میرفت از کشفل آیات اینو پیداین. فاد عبدالباقی اومد چه کرد؟ موجم درست کرد تو مصر کلمه رو بر اساس ریشه بعد اینم دادن کامپیوتر این میشه موجم لفظی یعنی بر اساس لفظ خب بعد اومدن گفتن آقا ما یه موضوع رو میدونیم تو قرآن هست؟ موضوع این که آدم وقتی که سختی بهش میفته همش خدا خدا میکنه همچین پاش که به خشکی رسید چی؟ خدا رو فراموش میکنه دو سه جا تو قرآن هستیم ولی نمیدونیم کجاست واجهش هم بلد نیستیم حالا اگر رکب و فلفل که یادتون بیاد از اون موجمه استفاده میکنید ولی رکبو و فلفل که یادتون نایمد موضوعش فقط تو ذهنتون هست یه موجمه یا موضوعی درست شده مثلا ش موضوع قفلت موضوع ذکر تو از طریق اونها ما موجه موضوعی قرآن زیاد داریم موجه موضوعی نهجل بلاغه دوسته تا داریم موجه موضوعی سعیفه سجادیه هم داریم فکر کنم یه فهرست موضوعی بهارم مرکز طریقات کامپیوتری و لسنامی توی به صلاح پایگاش داده فکر کنم سیدیش هم داده بیرون شما بگو این شعر دست بلند تمنای من تو را اینو پیدا بکنه براشون بخونه چجوری ما میگیم دست تمنا دست احسان دست بلند عفتو دست بلند فلان اینا رو برایشون توی شعر فارسی بخونه بلافاصله اون دست بلند رو میفهمه حالا حضرت فرمودن کسی از شما زودتر به من ملحق میشه که دست بخششش بلندتره من. دست بخشش، دست عف، دست تمنا، دست جود، دست احسان. باید شبیهش رو پیدا بکنیم اون برای سطوح عالیه، برای دانشجویان کارشناسی و حتی ارشدم نه خوب نیست. اشاره معلوم آها. فخوندیص آقای دکتر پاکچی اولا نوشته ایشون نیست، تغریرات درسی که درس داده شده یه دیتایپ کردن بعد ادیت نهایی هم نشده. ولی سطحش هم سطحیه که برای سطح دکتری طراحی و بازگوشه شده برای سطح کارشناسی و ارشد قابل درک و قابل هضم نیست. یعنی یه جاهایش هست، یه جاییش نیست ولی به صورت متن درسی برای کارشناسی نمیشه ارائه داد. آموزش فقالدیس به صورت مجازی تو دانشکده ما صورت گرفته ما در کارشناسیمون همین فایلی که آخر آخر برای شما گذاشتم درس مجازیی که بنده میدم فقط و فقط از طریق پاورپوینت و متن جانبی و سه چهار جلسه آنلاین امکان وزیره و میشه به این شکل انجام داد که هر جلسه تمرین رو بفرستن یه آموزشیار اون رو حل بکنه کما اینکه ما این کار رو انجام میدیم لازم نیست خود استاد توی دانشگاه های خیلی بزرگ اینو من از سال مثلا 62-63 که دانشگاه میرفتم دیده بودم یه استادی که میاد مثلا ده دوره پنج دوره یه درسی رو داده یه دانشجوی خیلی خوبش که مثلا پنج سال پیش دانشجو بوده خودش ولی هنوز استاد نشده میاد با عنوان مربی تمرین مثلا ما فیزیک هالیدی میخوندیم یا مثلا ریاضیات اه... الان یادم نیست یه ریاضیاتی بود اپوستل میخوند مثلا در... ما جورج به توماس مثلا جدید اومده بود یا آمریکایی نوشته بود این ریاضیات رو یه استاد خیلی بزرگ درس می‌داد. خودش آمریکا شاگرد اون مثلا بوده. ولی تمرینای این کتابو یه کسی که ارشد ریاضی می‌خون داره ما حل می‌کرد. اون تا ارشد ریاضی بود دو سه سال پیش این قبلا پر مشتر مثلا درس خونده بود. اینم هم همینجوره شما می‌تونید از طریق مجازی یه استادی پیدا بکنید بگه اون تمرینا رو یه نفر که سطح پایین‌تره براتون حل بکنه. ولی تمرین باید حتما حل بشه تصییب بشه و برگرد مطلعه مطلعه رو رو رو تو زمینه فقال حدیث میخوان یا تو زمینه حدیث باش روش فکر میکنم تو گروه میذاریم اصلا این گروه رو سعی میکنیم نگه داریم خوبه؟ قرائن با خانواده احادیث چیه؟ میتونیم بگیم که اون خوش مطلقه؟ تقریبا میتونیم بگیم یعنی خانواده حدیث چیزی جز قرائن منفصل لفظی یعنی احادیث دیگر نیستند. منتها اگه خانواده حدیث به صورت معمولی نه خانواده بزرگ, بزرگ حدیث که امروزه مثلا زبانشناسی شناسی جدید روش میگه شبکه معنایی شبکه معنایی نه ولی خانواده کوچک حدیث بله مشکلی نداره خوب وسط اینا شما هم سوالی دارید زرنگی کنید بپرسید من سوال دیگه ای نمیبینم حالا اگر دوستان کسی هست خوب تقریبا هم نزدیک پنج شدیم من یکی تا نکته ریزم به عنوان سفارش عرض بکنم ببینید معلمی یعنی تحمل اصل معلمی اصلا یعنی تحمل اینکه خیلی اون معلم نمیشن چون واقعا سخته توقع نداشته باشید یه کسی که دیپلم گرفته حالا یه ساله دو ساله توی دانشگاه اومده این مثل یه شخصی که مثل خودتون ده ساله داره حدیث میخونه کار حدیثی میکنه کار حدیث رو بخونه و معنا بکنه و تمام بشه بره فهم خیلی تدریجی و بطی و کند اتفاق میفته نکته دوم این که ما تو این جوی که الان زندگی میکنیم یک سری دانشجو ها ممکنه دوچار شبه هایی بشن دوچار سوال هایی بشن که اصلا به موضوع شما رفت نداشته باشیم اینها رو باید در کلاس خیلی ماهرانه تدبیر بکنید نفی مطلق سکوت مطلق بیرون کردن اینا راهحل الان نیست بسیار ماهرانه ظریف در روایات داریم که مدارای با مردم نیمی از عقله من تو کلمات خارجیا مرتب دقت میکنم تو فیلما تو مصاحبا چون ما خودم تو این زمینه ضعیف میبینم ببینید مثلا فرض میکنه از شما یه که شما نهار چی خوردی؟ خوچه ها نمیخوای بگی آقا جو من چلو کباب خوردم یا بالعکس نمیخوای بگی که من نهار اصلا نداشتم بخورم خب ما میمونیم تو گفتن این ولی خارجی یه جملاتی دارن میگن که به نظر شما نهار اصلا لازم بخورده بشه اصلاً, اصلا مسئله یه چیز دیگه میشه مثلا میگه به نظر شما الان ساعتیه که باید من نهار خورده باشم مثلا موضوع چیز دیگه میشه ایشون سوال کرد ها من چی میتونستم جواب بدم ها آره یا نه ولی مثلا حالا اون موقع به ذهنم رسید این ممکنه بعدا نه ممکنه مثلا فرض کنید یه دفعه یه چیز خوشمزه تری به ذهنم برسه ما باید در کلاس اون قسمت رو مدیریت بکنیم تو اون کارگاه قبلی ازم پرسیدن که اگر یه چیزی سوال کردن و جاش اینجا نیست از طرفی هم اگر بگیم الان بعدن میگه بلد نبود اینجا دو تا موضوع ما باید داشته باشیم یکی اینکه از اول پیشمینی کنیم این خیلی خبرویت میخواد و اگه کسی داشته باشه از اول بگه آقا این درسی که میدیم فلان قسمتش مربوط به فلان قسمت میشه اینو در اونجا توضیح خواهیم داد مثلا همین بیان مجازی فرزید یا نه اگر این رویس یا یادمون رفت اولین جلسه توضیح بدیم اگر ما تره درس ترمیک داشته باشیم نه تره درس جلسه ای تره درس ترمی یعنی موضوع ویژه یه جلسه است یا تو دو جلسه تمام میشه یا تو نیم جلسه اینو میگن موضوع درس درمیک. اگر این تره درس ترمیک رو داشته باشیم پله فاصله جواب خواهیم داد سوال شما در دو جلسه دیگه بهش میرسیم و دو جلسه دیگه هم وقتی بهش رسیدیم اعتماد دانشجو جزم میشه ما تو فقه الحدیث شما نمیتونید که وقتی دارید واژه شناسی رو میگید از ساختار نحویش اعتبیت نکنید که بالاخره حدیث رو با اون بفهمونید یه دفعه سوال از ساختار نحوی میکنه خب شما چه کار باید بکنید شما میگید آقا این موضوع جلسه چهارمه فعلا بپذیر این مبتدا خبره یا رفع انا مثلا بدل فرزن این قبور بد میرسیم به اونجا این دوتا نکته تو درسه فخولدیز زیاد پیش میاد به احترام کسانی که الان اومدن سلام علیکم و رحمته اگه سوالی دیگه نیست با یه سلوات تشکر می‌کنیم از شما خیلی زحمتش دیگه همچنین شما خری از شما تشکر نمیکننی وای حسن زاده؟